مین و سای مختاقی هم این از صورت مکی و شما هم قطعایی بیدید که صورت مکی معمولن چه محادثی رو و, و مکی از در حاضر لحظی که در مدنی برای من این و حدیث از اون نمت از هم حدیثیت از دماغ ساکه از این آقا این حدیث رو بگم برای اینکه شهنیون سوزه هم برای تونو شده من قرعه من قرعه ها پی کلد شهرن. من شهرنی یعنی می هر که هر دو ماه یک بار دو سوره رو می این رو خلافت رو هر دو ماه یک بار ولن این محنه انقل بشیم دو ماه یک بار انتعبود که این رو بکنید منقره افاقیم کنید چی میشه؟ محمد شرکی هستی بیردی که هر کمان کشوار این صور رو میشه؟ لم یوخف علایه لم لم یوخف علایه من یکونم از من از لم یوخف لم علیه یعنی چی؟ ترسیم نیست و نسبت به چی؟ اینجا؟ آدم دره؟ مگه جاهلی باشه پس این صوره شاید این رو میترده که شما دو ماه یک بار، یعنی در حاضر نگاه ترسیمش بگذیم تو تون دو ماه این صوره رو ببنیم این صور معارضش بگونه ای که شما از جهل نیوم که محتویه که با جهل سازواجی نداده جهل رو برطرف میکنه حالا اگه جهد برطرف کشه چی جاش میاد اینه علم علم و کنم یوخف خب علیه انگیبون نمیدن جاید اینکه علیه جهد رو برش بارم و پس این پس بنابراین فایده جنگیمی این شما رو، جهر در دین شما رو به دین آبا این فایده جنگیمی شون وخان و خانه پیامته نهن مقربی یا یومد منر مغربی می دهد این که سودر خوندار یومه قیامه گوزه این آدم رو می دهند تو دفعه بگید مغربی بگرد تو از, از عمل. خب شکتش عملی زراعت ببینن عملی بگید می شه ربتال قرآن و روایت داریم روح بر چال قرآن یعنی رو برسال قرآن یعنی روح برش چه بسیار آدم همونی اصلا دلاوت قرآن میکنن و الان قرآن رو یرعن رو درها همون قرآن داره لن میکنه کنن این که تواند واسیه که خوز قرآن چیه این که دلاوت کنی ولی به قرآن نباشی حتی اگر تو کانال کانه بنابراین باشه باید بگیر میکردیم کنید از این در سیدارش کار رو پس بنابراین می سوره یک ماستاده هر سوره رو بخواند و حتی از دو ماهی هم در این داشته باشه و دو ماهی افکار این رو رو یک ماهی این آدم علمی به یا خواهد که از بسید و هم جزئه بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از صورت که با اله لام را و صغیت هم دادم که با همین مرد مقتصره به مقتصره هم لام چی باشه که صغیت که در گروه مقتصره مشتره اصلا آیا در محتوی هم با هم اشتراکاتی دارن ندارن اینکه بیانی گروه مقتصره بعد هم بگونی سوال و ها درام را تیرچه آوریم. شتابش. اگر را بدون مورد مختار که معرف تصویرش وجود دارد، از این جیب ای روده و مقدره، من نداره ندادم که اینکه خداوند تحقیل کرده با من مقدره من این آزاد را و اعجاب اگر شما فقط به صورت علمه بسید دا دیگری داشتن، گفتن نمیدونم فقط سرمنده این ورود و مقدره نام، راه، مثل اینکه من داشتیم به توجه رو تا آیات برد در مخاطبی میشینه از این موارد در این تکین ها نقطه و عطور در بازه. که بین خدا و رسول و رموزا همه در این ورورت مخاطبی خواهی هست که که خود مخطبی مخطبی. مواقضش جز چیزهاییست که شما تو نواران و ما هم برزنی دارد مواقضی کنید این دستی که بوزداریم جایگاه به بخت بارد شدن به مواقضی رو تردید و چیز برون مقدره چون این به فتایی ما شما از پلان را یعنید چیز در در باید که مایی بود رو مبتر این چه تا سر بیان کردن درست شد؟ شده آیات متشابه هم باید بود یعنی باید رابط بوده کنید هم از رو اگر هم بردن در موانی که هست شده می فرمانید که می که این مبادر کنون رو دیدیم و ما قیلن اینجا با موقعه مبادر کشتایی که آیاتونی که می اشاره داره به همین آیاتی آیات همین یعنی فکر آیات و اشاره دور هم آورده اشاره هم آورده منباب حضیب یعنی این آیات این آیات حضیب و شم آیات و کتاب ممید. آیاتی هم کتاب محیم حالا جو یہ اینجا یہاں ہے۔ درود ہو۔ کاستم ساری کی نے۔ آیات کتاب عظیم ہے۔ الہنجی۔ تو تم خب و عتیادیم اون اشاره داره اشتباه کردیم کافشان کتاب دیگه میگیرن و از به آن بالا میشوند و جایی باید کتاب خیلی بالا این علیر آلات, آلات از کتاب یعنی لذا از بگیر. کتاب همین چیزی تا این کتاب ار داره ار افلانشان ار افلان چیزی که به ذهن میرسه توی که در کتاب اون لوح محفوظ میشه اون لوگ محفوظ که این موراهایی برجه آورده شده یعنی بود این لوح محفوظی این از کتاب یعنی میشه چی میشه؟ این آیات در موشن سونه ی جوناس بر ما آیاتی در گرفته شده از لوح محفوظی از یعنی آیاتون نه کتاب آیاتون نه کتاب بعد که ها که از کتاب منظور توی خود قرآن هم تحدیره بردن از کتاب پس می ترجمه آیات سومه آیات آیات از نوشتن از این قرآن این قرآنی برآن که در مقالد جدی از قرآنی که حکیم است. شو. در واقع دوبان از جساب شد چیه؟ بگی قرآن همین قرآنی که مقابل ما یعنی آیاتی از همین قرآنی که مقابل شماست قرآنی که حکیمن فلا حکیمن یعنی چی؟ حکیم یعنی دلحکمن حکیم یعنی دلحکمن حکیم به میگه؟ چیز که هکشمال علی بکنی سوال علم سوال علی سوال حکشمال بکنی چی یعنی لطف مخبوضی که صاحب حکشمال در یا براهایی که دارای حکمت حکشمال یعنی هر بار لغت نگاه کنید بیان عقل خطاب است خطاب است در قول و عمل سوال لغت معنا کرد حکمت یعنی یعنی به هدف زدن در گفتگو شعر عمل هر چیزی شما به هدف بزنید شفا درش نموده میشه پس عجبیه و که تمام افعال عقوال و بندیتاش بگید صد در صد مطابقت با حق واقعیت می خطا و باطل ترش می این چه شکلیه حسبنا وقتی چون این کتاب فراتر حکمت ها نه محظور در آسر حکمت ها. مشتمل و حکمت هست اگر گفتن چرا دقیقی مستقی سرا قرآن حکیم گفته شده بهش میگیم چی چون مشتمل و هست حکمت گفتن چون ناسقه به حکمت حکیم به کسی میگن که حکمت از او بگیم خواهش می خب این در واقع شامل اون هستون باید حکمت داشته باشد تا ارخو بگی سراغ و بلا که نمیتونه تو گروه موطی شیعه باشه یعنی اگه یعنی این نداره میتونه به دیگری بده؟ نه پس بنامه این داری گفتن گفتنی یعنی چیه بگی ناطقه, <تصفيق> ناطقه به حکمت خب ناطقه به حکمت مبنگل حکمت حتما مشتمل بر حکمت هم بگی حالا همین در آریا که مانکاری تنزیل اشاره به آریا برای تقدیم اسم اشاره یونونست کا خطاب تیانبر برابر بوله اصلا نه خطاب آم درست شد؟ آریا کتابت در کتاب درست یعنی آریا که کتاب و کتاب جزاب. یعنی دو محفوظ و عرش قرآن که در مقابل ما در دستریم یعنی مشتمل بر حکمت یا حکیم یعنی ناصره به حکمت چرا اگر ناصره باشد مشتمل بر حکمت هم بود حالا ما این امواز رو کنار هم که بگذاریم از مجموعه این باید بجاریم یه جمله ای بگیریم جمله شم جمله اسمی هم. این جمله کلکرهایی جمله چیه اسمی جمله اسمی دلالت کلا رو یعنی هست مستشد یه نه این سبوتش رو بندیم آزتونیم مقام ترکیر پس کتابه پس پس قرآن جارگانش مشخص شد دوم مشخص شد آیات مشخص شد آه آیات دیگر قرآن هم مشخص شد چون دیگه این جز ای از آیات دقیقه ی آیات هم همین دیگه این شهند اینجا به مقام سوره یونس که در این مزاره می این جز ای از اون گلده مشتی از اون فروان شد مشت دمونه هم بچه بیگه حالا این مقدمه شو شد دقیقی. اکانه اکانه لیل نازه اکانه لیل نازه عجبن اینه اکانه ان اگر ما از نظر لفظی بفنید جایگاه من چلمات پکید نشنه در دون نمار تقدیم داره تقدیم داره محصوب داره نشنه شون رو که به دونیم رو در یک داریم کاره چی مخاییی؟ اسم خواهر واقعی که محصوب چی رو هجاران چیه؟ دو بود هجاران چیه؟ هجاران یعنی ای یعنی میشه کان از چی؟ به ما کان اونا رجل من بشید بشید بشید بشید که نه خان از ای ها اونا الان رجل منهم ها منهم همه من هم جار مجروره بعد از رجل آمده جار مجرور بعد از رجل میشه چی؟ یعنی مردی از خودشون این رجل اینجا منظور یه چی؟ ایلا یعنی در مقابل مرحل امر هم اینسان از با داشت شد؟ یعنی عظیم بود که پیامبر چرا بشر شده منظورشون بود که پیامبر باید چی باشه؟ با آیا که ملک باشه شد تو را پس بنابراین اینجا منظور از رجال این نیسته که اونا تعجب کردن چون مرد آمده از ام جنس خودشون منظور اینه که چنا بگیر بشری یا آمده آه؟ یعنی علا بشره یکون رو رجولن آه؟ یعنی یه بشری یا یکی آغاز جسم و مادی داره آمده و شده به آمده الان رجولن نیست کنین نیچه چه filt demonstن hocون. یا زمناس دیگه یعنی از بزرگان و سناسی کسی نشده دیانبن ولی از آدم های معمولی کسی که جز اعتماع نیست نهان یعنی در سخت خودشون این دیدن میگن ولی به نظر که این نراشه منظورشون از ارانده شده یعنی این ها یعنی کسی که مثل اینها در بازار کار میره فضا میخوره از مادر مطبط شده پدری داشته در بین اونها، اون ها اون بیگزارنده حالا اون بهش بر شده در صورت اینه منظورشونی ای بود که کسی که میخواه یا سبیان فرداشه باید چی باشه باشه الا رجال نه ما یعنی نه مثل خودش بیاره همه یه شرایطش مثل شرایط خود روما بوده خار ملاحظه بگیریم الا رجال نه خب تا اینجا ما خبرو و اسم شناسیم بلکه این نه نه جونه این نه نه نهی ناس جا رو بگید محبه شروعه متعلق و عجبنه عجب اینجا یعنی موجب, موجب یعنی چی؟ چیز یعنی هم کار اینها اونا موجبن بامنه ما ما تحجب انگیزه؟ آه؟ منتشه ده نه؟ این که با کسی که مثل این ها این ها بوده و در دین این زندگی میکرده؟ این تحجب انگیزه؟ هم چی شد عجبا که عجبان به برنایی چیه این لام چه ای داره ببینید ده ده ده ده ده ده ده ده من اگر مثلا بگم احجب توکر یعنی تو رو باداره ده. یا احجب توکر تو رو وادار به تحجم کرد این لان. لام لام تربیت توزاره یا نه لام لام در واقع بگی هم ملکیت مالکیت یعنی دید یعنی این طوریه آیا بر کردن ما به یه آقایی که بشری که مثل خودشونه تحجبنگی در یا مایه تحجب برای این یعنی آه. آه. در واقع میتونیم بگیم که عجبا یعنی که اعجوب هستم اعجوبه چی؟ این چیزی که ما رو تحجب بازار میکنیم می یعنی عاجیب و دخت یعنی اعجوبه های روزگاه یعنی من میگم این برای من آجوبه. یعنی وقتی دیدنهش بگیر تحجیب کردن یکی آیا بند کردن ما به یه انسان مثل خودشون او عجوبت تحجیبنگی زد برای چی بگید؟ برای این مردمان هست؟ همناس بینیم مردمان بگید مردمی که قبول برانبری، پرانگل رو بگی اون من این که بشر است بگید. نمیگه. دیگه چیه اینطور؟ حمزه میگن برای تعجبه. استفهام، علی استفامش استفهام حقیقی نبود. نیستو استفهام حقیقی مستقل یعنی اون کسی سوال میکنه نمیتونه سوال میکنه تا شما پاسخ بگیره و بفهمه استفهام نشد راه بفهمه درستونه که استفهام عامه میتونه تفخری باشه سوال از مخاطب میشه تحلیلی باشه سوال از جونده اینجا در جونده راه افتاد این نمونده که مستقل نمیدونه میگه آله جای ترجب داره شما که سنه جایی ندید این استفهام برای دیگه الین قاعده استفاه متصوغي است فاز اول ما ترجم ترجم یعنی چی یعنی جای شگفتی داره که این مردمان از بغی به یک بشر از جنس خودشون ارجو برای خودشون ایجاد کردن برای خودشون بگید یعنی جای شگفتی برای خودشون داردی کردن از این از زنده خودشون در صورتی که خداقن کلام خودش رو وقتی به خواهد و بندگان خودش ابلاغ کنه بهترین کسی که میتوانم این کار رو, رو که با مرقل رو نگهید از اگر ملکی میامد عبادت همین رو, رو دومه اگر ملکی میامد استقامت امام خوصیم رو می کرد شما هم از این رو می ملکی ولی ما می‌بینیم که این پیامبر مثل مردمان گرسته می مثل مردمان پشته می مثل مردمان که بر خودش زحمت میده، اون واقع توش اون چون زبان خود این مردم به لسان قومه هم هستش پس بنابرای این گفتن برای تحجیب بروش شد در این گفتن برای تحجیب تحجیب یعنی به تعجب بازار کردن یعنی شما به تعجب میدادید مشخص شد یعنی بنابرای یعنی که نظر اول دار پس بنابرای این نام و به لناس شد بروش شد یعنی برای خودشون اطباب رو ترجب درست کردن از چی؟ چیه اطباب ترجب برای خودشون درست کردن از این که پیانبری آمده از جانب خدا که بشر هست مثل یعنی چیه؟ یعنی اینا نگاه نمیکنند به کلام چیلی کلامی که از خدا خدا آمده اجازه اگر میتونید شما هم مثل رو انجام بدید پس اگر شما نمیتوانید مثل رو انجام دهید، این این بیانبر نیست اون مثل توتی داره هم آنچه گروه هم دولاه هم آنچه هم داره نمازم میتونه داری آنچه پس این نمازم تا اینجا یه چیزی میمونه، یه چیزی دیگه ما، الان اوحیدان مفهوله کو سهی نشده؟ دیگه شده؟ نه نشد مفهول فاقاسته شما ده علاقه شده می‌گفت نگفته چی بنگ شده؟ با. چی بنگ شده؟ این بیاقت چی می گفته؟ چی بنگ شده؟ اون خلاصه یه چی بوده؟ که شده اتباه تحجب برای اینها این, این همینی که الان اینجا هست این همینی که لنه بعد از می که در معنای قبل معنای قبل یه چیز یعنی رسوندن که بر همینه دیگه بحی کردن نوعی بگید بیان اما ماده قول نبارد باشه. چون اگه ماته قول، الان اگر مثلا به جای ان آوهایی نابود، این بود. ان قول نادر جلن. دیگه نیاز به ان نبود. ان قول نادر جلن اندره نابسه. خدا اندره میشه. چی؟ مخصوص شد. یا ایتی چی ماده قول نباشد. اما معناه قول باشه. ان, انه میکنه شده شده ان, انه. آن, آن آن ه؟ یعنی این جمله ابیل میکنه آمیش که بخش شده. اونچه که بخش شده بعد با میشه شده. رو لذت کار میکنه آن آن از تو یاندر آن. از دوباره یاندر آن هن یعنی که آن نبوده. چرا رو دست خودش که که یا مشغولی تجمیرات متحدقی که دیدیم خب انزه انزه یه چی؟ پشتان بوده می خواهد یه اثبات رو که اون ترچه هم که من گفتم کارکش که پیانبر میگه این کار ما رو راحت می کنید. در خطا می جاریم. انزر انناس برنید. انناس همون این مردمان رو رو گفت. بعد می و بشر لذین آمنون وقتی بعد انزار کند مرموان رو یه تعدادی انزار رو بگید میفضیران بید. اونها بیده از دایره یه همه میان بیدون اونها میشن چی بگید؟ آمد. و بشر انزار از شیده دو تا فرمی سوا آقای رو بگید و بشر و بشر سه و, بشت. و, بشت. و, بشت. و بشت. خایدش از لذینه چی بوده؟ آمنو یعنی افتاقی خلوده. و دشت لذینه آمنو منهم. نه؟ و دشت لذینه آمنو منهم. هر خودونشون ایمان بودن بگو اشارتشون. قبول مرد قبول رو بگیرم ایمان ایمان بشارت از چی؟ به... ما دیگه بشتره یو بشتره, بشتره این دو مفهولیه ولی مفهول افتاً شد به نفسه بر میداره یه بدین این چیزی مفهول قرآن داریم فا شرهم به عذاب علیم به عذاب. ببینید نه؟ فا شرهم به عذاب علیم ما به و بشر و بس محدود اول شد به نقصه به نقصه برمیداره محدود داداشو آقا اینا سیزایی شده نیست دون نقاش دون جوری میگن خوش نه؟ این نقاش شده میگن اینا باید خواهد کنید یعنی هیچ راه هیده جزیدی نداره بنده در که ما هم میشید لغت شناسی کنید، به شناسی کنید دفرقید هم سهی به چه شکلی استعمال میشه وقت رو برای چه شکلی ساخت میشه. ما این دشتره رو یاد داریم حالا اندر این هم مفهول به نفسی فرد شید هم افرد و فارد سهده شید فاردش هم آرد سهده ما دون بود امندرحون قدم از سرقن اندرح بگیم امندرحون قدم از سرقن بگیم اندرح رفت اینجا ورمی شده جمع ورمی شده چی؟ حرف قبل لده. انا انا بیاستید. اینو مگر انتباس پیش بیاد انتباس. مثلا بگم رقب تو هم نکر فعول. تو هم با فی متعدی میشه، هم با اله، هم با اند. با فی و اله متعدی شد. مده این داشتن دوست داشتن. با اند اگر رو شد. به بعد دانستن کراهت داشتن خب میگم بگم بعد تو هم نگه دوست شما بهیستی یا بده میاد بیستی. این بوده تو توی هم یا اله هم یا لقب توا ام اینجا نیچه هم نگه کنم؟ چیه بگید. ابحام، معنوان، کلام ساخت پس هر که همه از مگر این که چون از من رو یا این قرآن همکه گوهنه پس قاعده این بوده ترقبون هم که یا هر قبول همه همزن شد بکنید یعنی تماییون دارید با اینها ازدواز بکنید یا بله میاد با اینها ازدواز بکنید مثال آیتا لحکان آنه آنچه حرص شده قاعده از آیت مراسره میکنید بلا اگر ما آنین بودیم که اینجا قرینه هست قرینه هست یعنی شما آیت بهونیی قرینه اگر قرینه بزرگ داشته باشه اینجا بشه حرص کنید چرا تو می ارتباطی بودیون؟ نداره. اگر من با یه نفس صحبت کردم که قیام تو می خیلی کارها بکنه تو اگه قیام بکنید بهقول قول خودمون همه به تو استخبار میکنم قیام شما وارث فلاح میشه خیلو اینو بعد بگم رقی تو این نکتنم نمیدونی رقی تو اون اگه یه بود قینه داره کنید روش آیا این که ترگرونه که نه، از اون مباردیه که هست و هست جردش واقعی که کار کنیده؟ یا نه، یا نه. ازاً باید که آقا یک نفر میپنید مفترضی شده که اینجا خداوند حض کرده قرار به بودی که افهان بگذاره. ازاً قرار به شمفر توی به دلیل اینکه حالا اومده توصیب شده به دلیل اینکه اگر مثلا اینها میخواد اضباط کنن با اینها، به خاطر سروتشون و جمالشون این طور آدم ها چی تحصیل میگیرن؟ امسر بگیرن اما اگر میخواد اضباط کنه با اینها، به خاطر ایمانشون به خاطر بگید تیانت به خودش رو به طرف مقادلت اینه را یه سی تحصیل میگید نسبه میدید یعنی لفظ فهمیدن جایگاه خب، این اما هیچ ارتباطی نداره بوده به اندن ده اندن لحوم قدم هست بخیل اندراب به چی میشه؟ آن، ده اندن لحوم لحوم قرار, مقدم. لحوم قرار مقدم مقدم شده واسه چی؟ آه. موسیقا فقط شد. یعنی اینا بقید پاداش دارند. دقیقه پاداش ندادند. این, این آمانه پاداش این هم, هم؟ در حالت میگهد. قدم, سدقه. قدم سدقه در واقع اینطوری بوده. قدم اینجا یعنی موجود یعنی برده. یعنی... موت یعنی اعتشا. یعنی... ها؟ چرا قدم بردم کردن؟ بدون بلاغت مفیدش بیان در واقع مجاز مرسل به این که دست میگم یعنی الله, الله یعنی چی؟ آه. ید میگن قدرت ازش اراده میکنن ید میگن ازش چه اراده میکنن دعمت اراده میکنن مشاهده چون ید ثبت آلت برای قدرت یا برای ب ها؟ میگه دست برانی برای سر بر ماست کنش یعنی دو تشو تو این یکه اینجا اینجا قدم چون سبب و عالت هست برای فرق این آدم با رفتن میرسه اینجا قدم یعنی بزر قدم یعنی برزر چونه ترجمه شو چیزی تیزت میشه می شما می اینجا ترجمه بود یه هم یعنی راستی یعنی اجر راستین اجر خوب. فکری که فردان جمیل، آن نهون فردان جمیل، اجران کبران. یه نور میشه دیگه؟ حالا این قدم دیگر اجر جمیل، آه این پیشش کیه؟ آه این در آب به قدم خود. تعدیل شده ازش بگید از درش بگی از من به قدم چون این ها با حرکتشون به این موضی رسند این موض هم جایگاه داره پیشون خدا اندره بگیم این موض هم منتکنی بگیم بعد اما سرخه سرخه نکره از قداعه باید تعدیل نمیده یعنی عجرن کبیرن اندره بگیم یا عجراً جمیلا اند؟ درست؟ نا. نا. نا. یعنی یعنی وقتی میاد به یه چیزی عمل حقیقی. عمل واقعی. یعنی هیچ کنه شاربی درش. درش شد. حالا من دارم میخوام ساختار دفعی هستی امروز. ما برای سوال یانده که شما رو برید با این روز که اومدی مطالعه نمیشه ان شاء الله در ارتباط این 200 ساعت کاری اقدام بگذارید جا هستیم ما یک یعنی بعد از قرآن یو و رو قرآن حتی الفاتش هم بعضی بردی دیگر خب، پس اونی که پیامبر به این مردمان گفته و مردمان جای تعجب برا برای خودشون درست کردن که یه همچین آدمی آمده و قدره یه همچین چیزی رو میگه اون چی بوده؟ اینکه مردم حواستون باش خدایی هست. اندر الناس هم و بشه البرمین هم. قالا کافرونی قالا اصطیناف دیگه سعیانی. یعنی این سوال رو پیش میاده. که خب پیانبر گفت. پیانبر گفت. و افلام رسالت کرد. چی شد؟ چ شد؟ میبرناید بالا الکافرون یعنی قال الکافرون هم این ها کافر... تو از لذیر آمندوشون که مشخص شد اونا مسته تام دارن هم با بالا الکافرون کافرونشون چی گفتن؟ اونا یکی نفذی گفتن؟ میگه بالا الکافرون اینم ن طَاهِرٌ مُدِينٌ إِلَّا هَادِلٌ هر دو برابر اکثر بزرگ مثل عادمی رو اینجا به راه خداوند می‌گن یعنی بعد رو بره بره از صاحب رو نیست. خب، حالا سهرون هاردا میشه نه. چی گفتن کده این نه حاضر، هاردا، گاری میاد، برای چی میاد؟ تعدیم یکی از آبودن اسم نزدیک برای تعدیم از این نحاضر القرآن یا حذیه در نتیه یا افنا این القرآن این این این چیه؟ اسم اشاره نزدیک برای تختیره اینو بلاقه در این محینا رو ندونیم این می توفهمیم؟ آه؟ اونم هم اسم اشاره نزدیک برو برای یک برای چی شد؟ دیره ببینید من با دوست تحبیر فارسی خودم چون بعد آخرت وقتی در عرقی بگید قرآن قرآن با خلینه لبسی، کاریوها سیاهی، کاریوها خون سیدار هر کسون میتونه بگید به ما نشون بده مثلا وقتی چه درگشتن در مدرگشتن دوره اینطوری باشن کداست آهازن نزیک قرآن هاتا کن آهازن نزیک که به خداوند پوشیده به یه آهازن اینجا یه یعنی که همشون نگفتن گذکر رو محبولشو حرف کردن با به اطلاع نگاه راشدن بوده که محبولت رو نکردن گذکر رو آله هر دفعه بگه نگفتن به خلا یعنی افت و خلاها توی در میاده این تو خدا اینجا الان با طرف شدید که شما این رو فرزید این بشه ببین اگه اگه ان هازار در ظاهر و ان هازار بشه ظاهر چه گفتیم که یعنی این نهار در کتاب درست شد؟ لسهرون او سهرون نکرد برای یک هم آوردن سفرد مبین یعنی زادر شد یعنی زهرد به درستازه اونجا از اونجا دو دوتا داره یک یعنی عرب یعنی آشکار شد یک عوانه یعنی آشکار اینجا به نظر نیاز که موگین یعنی نه هر که ببینه میپهم نیاز به فضلال نداره یعنی فیلش فیلش لازم موگین خب این نه سهرون موگین اینش فضلالت بسرسی موگین یعنی یه سهر گلده خلوزده که به قول محروب هر پویی هم میبیند نیازم ایچ کونه استردادی هم بگیه نه داده کاملا بازی نکره اش اون رو که از چون؟ باید یه اون هم دروز که کاملا کار منزاره درستن یعنی که میتونه رو بحث و استقلال و جدنی رو نداره اما حاضاش به نظر شما برای تقریب رو به <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یعنی که هم رو این برآن عرزی مشتن تشکیر ندر یه است حالا چه این کتاب باشه چه این بگید بهانبر باشه این یه دروگ بنده یا یک علیه عزبالله و صاحب خود این، خود این کلام صاحبی که خود این کلام قابلی خود این کلام چون چی شو. شو. این یه سه شده آمد؟ از پسش یعنی باید کلام خودشون دونستنش تحت تنصیلشم باقی شدن نسته صاحب کاری میکنه که این مطبور بگه تحت قبلش واقع میشه بعد بگو خودشم ببینیتونه مثل اون انجام شد شایدونه اون را انجام شد و سه را واضح میکنیم خود این نشون میبینه که بگو مونده بودن و اگه یه نوع توحومت نیم یعنی دیگه غیر از نیست نیست یه نوع بگو یعنی آجر زوده از اینکه مقابله کارم این ازش نمی‌فهمیم چون آجر زوده هم بودن اینه بگیر صاحبه یا بودن این کتابه فهمیم تفترانی اعتراف هم کردن به اینکه این از جانب بگیر ما قابل مقابله نیستم قابل مقابله نیستم هم بایدن از عبارتشون بردونیم عبارتشون این مسته چیه؟ و خب، کانه چی یعنی با کنید این ها که یعنی خب کافلین چی شدن این وقت؟ مومنی که ثابت و فضل کرامت شدن کافلین چی شدن؟ چی گفتن؟ میگه کافلین موندن که کلام بیانده و پرگشتن کلام بیانده یا خود بیانده و سه کنم سه بزرگ و پر کام این ظاهر بودنشم یعنی چی؟ یعنی که همه بودن می روید چه تحصیل کنید تا این جای مقصد بایدون از این ها جای داره که شبانید بودن چی هم درده یا تحجیب تحجیب یعنی که من شکل کرده شما مطابعه یا مطالبی میگه یعنی چی؟ م. یعنی دفته میگه من انجام میدم اون مقول اثر رو میبرده مثلا میگم کسل توز دو جوجه. یعنی چی کسل توز دو جا شد؟ یعنی شیشن شکسته. بعد میگم بنکتر از دو جا شد بنکتر از دو جا شد یه یعنی چی؟ شیشن شکست اثر در ترجت توز یعنی یه نفل کار عجیبی انجام داد من تحجیب را بگیرم پس بگفتم عجب در من ایجا شد تعجیز یعنی چی؟ به شکرسی بازار کردن آن تحجیبی بگم عجب تو کرد پس عجب پر عجب تو کردی تو را شکرسده کردن پس عجب پر ما شکرسده شدیم اگه بگیر برای تحجیبه ما شکرسده شدن برای تعجیب یعنی این کلاف ما رو به عجب بازه به نظر میاد که ترجم اینجا مطابعه خب؟